مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتاد و دوم خبر کردن خروس از مرگ خاجه لیک فردا خواهد و مردن یقین گاو خواهد کشت وارس در هنین صاحب خانه بخواهد مرد و رفت روز فردا نک رسیدت لوت زفت پاره های نان و لالنگ و تا آم در میان کوی یابد خاص و آم گاب قربانی و نانهای تناک برسگان و سایلان ریزد سبک مرگ اسب و استر و مرگ غلام بود از این مغرور خام از زیان مال و درد آن گریخت مال افزون کرد و خون خیش ریخت این ریاضت های دربیشان چراست کان بلا بر تن بقای جان هاست تابقای خود نیابد سالکه چون کند تن را سقیم و حالکه دست کی جنبد به ایثار و عمل تا نبیند دادرا جانش بدل آنکه که بدهد بی امید سودها آن خدای است آن خدای است، آن خدا یابلی حق که خوی حق گرفت نور گشت و تابش مطلق گرفت کوغنی است و جزء و جمله فقیر کی فقیر به عوض گوید که گیر تا نبیند کودک که سیب هست او پیاز گنده را ندهد زده است این همه بازار بحر این غرض بر دکانها شسته بر بوی عوض صد متاع خوب عرضه می کنند بندرون دل عوض میتنند یک سلام نشنوی ای مرد دین که نگیرد آخر آن آستین بیتما نشنیدم از خاص و آم من سلام ای برادر و سلام. جز سلام حق هین آن را بجو جو خانه خانه جا بجا و کو, کو از دهان آدمی خوشمشام هم پیام حق شنودم هم سلام وین سلام باقیان بر بوی آن من همینوشم بدل دل خوشدرز جان زان سلام او سلام حق شده است کاتشان در دودمان خود زده است مرده است از خود شده زنده به رب زان بود اسرار حقش در دو لب مردن تن در ریاضت زندگی است رنج این تن روح را پایندگی است. گوش بنهاده بود آن مرد خبیس. میشنود او از خروسش آن حدیس. دویدن آن شخص به سوی موسا به زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شنید. چون شنید اینها دوان شد تیز و تفت، بردر موسا کلیم الله رفت. رو همه مالید در خاک او بیم که مرا فریاد رست زین، ای کلیم. گفت رو بفروش خود را و بره، چون که استاگشتهی برجه زچه. بر مسلمانان زیان انداست و کیسه و همیانها را کن دو تو من درون خشت دیدم این قضا که در آینه ایان شد مر ترا عاقل اول بیند آخر را به دل اندر آخر بیند از دانش مقل باز زاری کرد چینی کوخ سال مرمرا در سر مزن در رو ممال از من آن آمد که بودم ناسزا ناسزایم را تده حسنل جزاء گفت تیری جست از شست ای پسر نیست سنت کایدان واپس بسر لیک درخواهم داوره تا که ایمان آن زمان با خود بری چونکه ایمان برده باشی زنده ای چونکه با ایمان روی پاینده ای هم در دم حال بر خاجه بگشت تا دلش شورید و آوردند تشت شورش مرگ است نه حیض تعام قی چه سودت دارد ای بدبخت خام چهار کس بردند تا سوی بساق ساق می مالید او بر پشت ساق پند موسی نشنوی شوخی کنی خیشتن بر تیغ پولادی زنی، شرم ناید تیغ را از جان تو، آن توست ای برادر، آن تو. دعا کردن موسا آن شخص را تا به ایمان رود از دنیا، موسی آمد در مناجات آن صحر که خدا ایمان از او مستان مبر پادشاهی کن بر او بخشا که او صحو کرد و خیر رویی و قلو گفتمش این علم نه در خورده توست. دفع پندارید گفتم را و سست دست را بر آن آنکس زند که اصا را دستش اجدرها کند سر غیب آن را سزد آموختن که ز گفتن لب تواند دوختن در خوره دریا نشد جز مرغ آب فهم کن والله و عالم به سواب او به دریا رفت و مرغابی نبود گشت غرقه دستگیرش ای و دود. اجابت کردن حق تعالی دعای موسا را علیه السلام گفت بخشیدم بدو ایمان نعم ور تو خواهی این زمان زندش کنم بلکه جمله مردگان خاک را این زمان زنده کنم بهر را. گفت موسا این جهان مردن است آن جهان انگیز کانجا روشن است این فناجا چون جهان بود نیست، بازگشت آریت بس سود نیست رحمت افشان بر ایشان هم کنون، در نهان خانه لدینا محزرون تا بدانی که زیان جسم و مال سود جان باشد نت از و پس ریاضت را به جان شو مشتری. چون سپردی تن به خدمت جان بری. و ریاضت آیدت به اختیار. سر بنه نه شکرانده ای کامیار. چون حقت دادان ریاضت شکر کن. شکر کن. تو نکردی او کشیدت. زمر کن حکایت آن زن که فرزندش نمی زیست آن زن هر سال زایید پسر بیش از ششمه نبودی آمرور یا سمه یا ماه گشتی تباه ناله کرد آن زن که افغان ای اله نومه هم بارست و سه ماه هم فره نیمتم زودتر رو از قوس قزح پیش مردان خدا کرده نفیر زین شکایت آن زن از درد نزیر بیست فرزند اینچنین در گور رفت آتش در جانشان افتاد تفت تا شب بنمود او را جنت باقی سبز خوش بی‌زنت باغ گفتم نعمت بیکیف را کسل نیمت هاست و مجمع باغ ها ورنه لا اینون رعت چه جای باغ گفت نور غیب را یزدان چراغ مثل نبود آن مثال آن بود تا برد بوی آنکه او حیران بود حاصل آن زن دید آن را مست شد زان تجلی آن ضعیف از دست شد دید در قصر نوشته نام خیش آن خود دانستشان محبوب کیش بعد از آن گفتند کین نعمت وراست کو جان بازی جز صادق نخواست خدمت بسیار می بایست کرد مر تا برخوری زین چاشت خرد چون تو کاهل بودی اندر التجا آن مصیبت ها عوض دادت خدا گفت یا رب تا صد سال و فزون این چونینم ده بریز از من تو خون اندران باغ او چو آمد پیش پیش دید در وی جمله فرزندان خیش گفت از من گم شد از تو گم نشد بید چشم غیب کس مردم نشد تو نکردی فست و از بینی دوید، خون افزون تازه تب جانت رهید. مغز هر میوه بهست از پوستش، پوست دانتن را و مغز آن دوستش. مغز نغز دارد آخر آدمی. یکدم آن را طلب گرزان دمی در آمدن حمزه رضی الله و در جنگ بیزره اندر آخر حمزه چون در صف شده بیزره سرماست در غزب آمدی سینه بازو تن برهنه پیش پیش در فکندی در صف شمشیر خیش خلق پرسیدند کی ام رسول ای هزبر صفشکن شاه فهول نی تو لا تلقو به عیدیکم الا تحلکو خاندیز پیغام خدا پس چرا تو خیش را در تحلکه می دراندازی چونین در معرکه؟ چون جوان بودی و زفت و سخت زه تو نمی رفتی سوی صف بی زره، چون شدی پیر و ضعیف و منحنی پردههای های لاعبالی می زنی؟ لا اوبالیوار با تیغ و سنان می نمایی دار و, و امتحان تیغ حرمت می ندارد پیر را کی بود تمییز تیغ و تیر را زین نسق غمخارگان بخبر پند می دادند او را از غیر جواب حمزه مر را گفت حمزه چونکه بودم من جوان مرگ می دیدم ودا این جهان سوی مردن کسب بر کی رود پیش اجدرها برهنه کی شود لیک از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی را زبون از برون حس لشکرگاه شاه پر همه بینم ز نور حق سپاه خیمه در خیمه تناب اندر تناب شکر آنکه کرد بیدارم زخاب آن که مردن پیش چشمش تحلک است امر لا بگیرد او بد است وان که مردن پیش او شد فتح باب سار او آید مرورا را در خطاب الهزر ای مرگ بینان بار او الاجل ای حشر بینان ساره او. از سلا ای لطف بینان افره او. البلا ای قهر بینان اتره او. هر که یوسف دید جان کردش فدا. هر که گرگش دید برگشت از خدا. مرگ هر یک ای پسر، هم رنگ است. پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست پیش ترک آینه را خوشرنگی است پیش زنگی آینه هم زنگی است آن میترسی ترسی ز مرگ اندر فرار آن ز خود ترسانی ای جان حوش دار روی زشت توست نه رخسار مرگ جان تو همچون درخت و مرگ برگ از تو روست است ار نکوی است ار بد است ناخوش و خوش هر زمیرت از خد است گربخار خستهی خود کشتهی ورهری و قزدری خود رشتهی دان که نبود فعل همرنگ جزا هیچ خدمت نیست همرنگ عطا مزد مزدوران نمیماند کار. کن عرز وین جوهر است و پایدار آن همه سختی و زور است و عرق وین همه سیم است و زر است و طبق گر تو را آید زجای تهمت، کرد مظلومت دعا در مهنت، تو همه گویی که من آزادم بر کس من تهمت ننهادم تو گناه کردهی شکل دگر دانه کشتی دانه کهی ماند ببر او زنا کرد و جزا صد چوب بود گویدو من کی زدم کس را به اود نه جزای آن زنا بود این بلا چوب کیماند ماند زنا را در خلا مار کیماند ماند را ای کلیم درد کیماند ماند دوارا ای حکیم تو بجای آن آسا آب منی چون بیافگندی شد آن شخص سنی یار شد یا مار شد آن آب تو آسا چون است این ایجاب تو هیچ ماند آب آن فرزند را هیچ ماند نیشکر مرقند را چون سجود یا رکوع مرد کشت شد در آن عالم سجود او بهشت چون که پرید پر از دهانش حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلاق حمد و تسبیحت نماند مرغ را گرچه نطفه مرغ با دست و هوا چون دستت رست ایثار و زکات گشت این دست آن طرف نخل و نبات آب صبرت جوی آب خلد شد جوی شیر خلد، مهر توست و ذوق گشت جوی انگبین مستی و شوق تو جوی خمر بین این سببها آن اثرها را نماند، کس نداند چونش جای آن نشاند. این سببها چون به فرمان تو بود، چار جو هم تو را فرمان نمود. هر طرف خواهی روانش می کنی، آن صفت چون بود چونانش می کنی. چون منی تو که در فرمان توست نسل آن در امر تو آیند چوست میدود بر امر تو فرزند نو که منم جزوت که کردیش گراو آن صفات در امر تو بود این جهان هم در امر توست آن جوها روان آن درختان مر تو را فرمان برند کند درختان از صفاتت بابرند چون به با امر توست اینجا این صفات پس در امر توست آنجا آن جزات چون ز دستت زخم بر مظلوم رست آن درخت گشت، از او زقوم زق راست. چون ز خشم آتش تو در دل ها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار کز ویزاد بر مردم زند آن سخنهای چو مار و کشدمت مار و کشدم گشت و میگیرد دومت را داشتی در انتظار انتظار خیزد گشت یار وعده فردا و پس تو انتظار حشرت آمد وای تو منتظر مانی در آن روز دراز در حساب و آفتاب جانگداز کاسمان را منتظر می داشتی تخم فردا رهروم می کاشتی خشم تو تخم سعیر دوزخ است هین بکش این دوزخت را کین فخ است کشتن این نار نبود جز به نور نور و کتفا نارنا نحنو و شکور گر تو بی نور کنی حلم است آتشت زندست و در خاکستر است آن تکلف باشد و روپوش هین نار را نکشد بغیر نور دین تا نبینی نور دین ایمن ما باش کاتش پنهان شبت یا روز فاش نور آب دان و هم بر آب چفس چونکه داری آب از آتش مترس آب آتش را کشد کاتش به خو می بسوزد نسل و فرزندان او سوی ان مرغابیان را روز چند تا تو را در آب حیوان کشند مرغ خاکی مرغ آبی همتنند لیک زدانند آب و روغنند هر یکی مر اصل خود را بنده اند احتیاط کن به هم مانندند همچنان که وسوسو وحی علاست هر دو معقولند لیکن فرق هست هر دو دلالان بازار زمیر رخت ها را می ستایند ای امیر گر تو صراف دلی فکرت شناس فرق کن سر دو فکرت چون نخواست ور ندانی این دو فکرت از گمان لاخلابه گوی مشتاب و مران